فصل هفتم هنگام که شهر از لب دریا به کپرش برگشت تازه آفتاب زردی رو های نمناک بیرون نخلستان نشسته بود و هنوز بچه هایش رو لوکه خواب بودند در کپر را باز کرد و رفت تو و میان کپر ایستاد و اطراف خودش را نگاه کرد رنگ رخصاره کپر پریده بود همه چیز دگرگون بود همه چیز افلیک شده بود، سایه دیوارها برگشته بود و اجا خاموش و سقف به زمین نزدیک شده بود و کفه که بر را لیس میزد. اتاق خفه و خسته و خرد شده بود توفش سنگین و غلیز از لای زبان کوچکش سر خورد و اغزد زد. نمیدانست چه کار کند خاموشی و تنهایی هرگز ندیده ای دلش را فشار میداد. با رفتن محمد همه چیز نابود شده بود به دلش افتاده بود که محمد دیگر بر نمیگردد. هنوز آنجا بوی محمد میآمد. آمد شلوارری را که صبح هر پیش از رفتنش رو توده کاه گوشه که انداخته بود هنوز به جایی بود و ملکی یغوره او گوشه اتاق افتاده بود محمد مانند همیشه با پای برهنه رفته بود هنوز تو کبر خیلی چیزها بود که اگر محمد برمیگشت که او و بچه را ببرد بی صاحب همان و معلوم نبود گیر چه کسی میافتاد. لحاف و تشک و ظرف و لباس و جاجیم و آن همه کاه و بریده و آرد و جو و خورما و شیره و ماهیشور شور که با خون دل برای روز مبادا انبار کرده بود جا می ماند اگه محمد بیادش اگه محمد زنده برگرده صد برابر اینها که بمونه باکی نیست. دنیا فدایی یک تار موی محمد. پیش خود فکر کرد و از کپر رفت بیرون. تو دلش آشو افتاده بود از کپر بدش میامد لوکه راست و خاموش و هوانگیز در دل صحرا ایستاده بود. بچه ها هنوز رویان خواب بودند. شهر و دلش میخواست فریاد بزند و شیون کند و خاک صحرا به سر خودش بریزد. چند تا از جلوی که رد شدند آنها خاموش دنبال کار خود روان بودند مثل اینکه آنها هم از درد دل و مصیبت شهر رو خبر داشتند آنها به نظر خاموش و سربزی و سوگوار آمدند دلش میخواست بگوید مردم محمد مرده بیایید با هم شیون کنیم دلش میخواست راه بیفتد و با آنها برود برود و از کپر و بچهاش و بزهاش و خانمانش فرار کند بزها زیر لکه ولو بودند تند و بی اراده رفت زیر لکه و پهلوی بز پیشاهنگ نشست و آن را هلکی گرفت و بغلش مرغ و خروس ها پروبال زدند و قد کردند و در رفتند بز گنده و گردن دراز بود و چشمانش زرد و درشت و بیم خورده بود محمد این بز را خیلی دوست می داشت و اسمش را گذاشته بود خاله فاطمه. و شهرو یادش آمد و شوخی های محمد و خوشخلوی های او تو سرش جان گرفت و تو بینیش سوخت و چشمانش تر شد و عشق رو گناه هایش سر خورد. بز تو بغن شهرو ایستاده بود و آرواره تکان می‌خورد و چشمان درشت و زردش دریده و شتاب زده و هی خورده آن دورها نگاه می‌کرد. شهر و آرام گریه میکرد و بیخ گلویش هم آمده بود آهسته میلرزید، دودلش دلش خالی بود نمیدانست چه کار کند بعد دستهایش تو موهای تن باز فرو رفت و به جستن تن باز پرداخت و کک های درشت و بر رو و با حرس لای انگشتان خود میمالید. دو دوتا کنه گنده بیخ پستانهای باز چسبیده بود آنها را گرفت و با سنگ له کرد و سنگ را با خشم به زمین گفت پستانهای بز فروکش شده و خالی بود و شهرو ناخوش بود تو که این همه چیز میخوری پس چرا شیر تو کلونات نیست؟ دیگه ما شیر لازم نداریم دیگه کسی نیست شیر بخوره خال فاطمه یه چیزی بهت بگم به کسی نگیا اگه بازگو کنی خیلی برای محمد بد میشه من رفتم همه چیزا رو گذاشتم تو بلم و روشونم با گونی گرفتم که کسی نبینه. کیسه پول هم یه جای خیلی خوبی خاکش کردم. به تو هم نمیگم کجا خاکش کردم. امروز دیگه روز آخر زندگی ماست. شوبر شه سوارم رفته. شایدم دیگه هیچ وقت بر میدونی تو خواهراتم هم همه رو به خیرالله الله فروختیم. یه ساعت دیگه میاد میبردتون. اون وقت دیگه من تنهای تنها میشم. اما خوبیش اینه که امروز هر جور باشه کارای سره میشه، یا این طرفی یا اون طرفی، تو هم دعا کن محمد تندرست برگرده. تو گوش بز حرف میزد و هق هق می کرد، بیش بز تکان میخورد و علف تو دهنش را زیر دندانهایش آسیاب میکرد. از اینکه تنش را میجستند خوشش آمده بود و لخت شده بود و رو پاهاش تکان تکان میخورد و دمش را می جنباند. بچه ها یکی یکی از بالای نردبانی که به لوکت کیے داده بود آمدند پایین. شهر شهرو چشمانش را با چارقدش قدش پاک کرد و باز بوز را ماچ کرد. بچه ها رفتند تو کومه و هر یکی یک تکه نان از تو لاوک برداشتند و نیش کشیدند. هیچ نمیدانستند مادرشان صبح پا شده رفته کنار دریا. اگر میفهمیدن برزخ میشدند. دلشان میخواست آنها هم مثل تازی دنبالش میدویدند. بچه ها تو سایه کم نشستند، نانشان را میخوردند و به مادرشان و به بزها نگاه میکردند. حس میکردند مادرشان یک چیزیش هست. شهر و حوااسش پیش بزها و بچه هایش نبود و اندام مسلح محمد را که صبح زود دیده بود از در که بر بیرون رفته بود تو چشمانش ایستاده بود. باز عدسی اشکی سوزان، زیر پلک هایش جوش خورد دیگر به ککه ها کاری نداشت و از زیر دستش میپریدند و انگشتانش تن بز را می و دلش شور میزد. نمیدانست از پهلوی بزها که پاشود چه کار کند و کجا برود دلش نمیخواست با بچه هایش روبرو بشود و با آنها حرف بزند مردم ده تک تک و چند تا چند تا دنبال کارشان میرفتند. با و گاو و های خود میرفتند رفتند دنبال کارشان. کومه های کوچک تو سری خورده از پیش نخل ساخته شده کنار هم نشسته بودند و نور نمناک خورشید بام داد تو فرق سرشان می‌خورد. آفتاب نمه های رو زمین را ور و آبستن آنها می‌شد. شد. مانند ها آب دهان موریانه که با خاک آغشته شده باشد رو زمین خشک شده بود و با جای پای آدمها و ایوانات می شکست و فرو میریخت و جاپاهای گریزان زمخت تو دل آنها نقش میگرفت. شهررو می چه کار کند؟ دست و دلش به کار نمیرفت. هر روز کارش جور بود. تو تنور یا روز ساج برای خودشان نان میپخت. رخت میشست. فشکل بزها را برای سوخت جمع می کرد و میریخت و آفتاب خشک بشوند. ماست میبست، رفت و روب می کرد وصل میکرد. اما امروز از زندگیش دور بود به شهر غریبی رسیده بود و تو کاروان منزل داشت و هردم میخواست از آنجا برود خانه مالش نبود بزها را فروخته بودند رقبت نمیکرد تو کومه برود حوصله بچه را هم نداشت مثل اینکه آنها هم مالش نبودند دلش نمیخواست به آنها نگاه کند آنها به نظرش چرک و بیگانه بودند یتیم شده بودند سرکله خیرالله پیدا شد که آمده بود بزها را ببرد پیرمرد خندان چهر پرچین قهفهی پوستی بود که پایش میلنگید و چوب کلفتی تو دستش بود با انتکیه میزد. زد کارش همین خرید و فروش گوسفند بود یک دانه بریده کلفت سرسبز تو دستش بود تا بزها را به بوی آن با خود بکشاند و ببرد و یک کلاه بافته از پیش نقل سرش بود عرق و ذرات سرم مانندی تو چهرش خوابیده بود گوی چهرش هیچگاه رنگ آب به خود ندیده بود بزها باز بودند و هنوز بز پیشا بغل شهرو بود خیرولا میدانست که جدا کردن آنها از آن خانه کار آسانی نیست به شهرو سلام کرد و خندید شهرو جوابش داد و فوری از بغل بزبا شد ایستاد بچو از تو سایه کومه پا شدند و دویدند و آمدند پهلوی بوسها خیر الله اشاره به ها کرد و گفت زیره ماشاءالله محمد آدم عاقلیه که پول و پلش تو معامله بندر انداخته که روز به روز زیادتر بشه حتما به همین زودی ها یه خونه خوب هم تو بندر میخره و دیگه واجب حج میشه حق هم داره محمد خیلی سال تو بندر پیش انگلیس ها کار میکنه جوون بی همتایه خدا بلندش کنه خدا عزتش بده شهرو با تأثیر گفت خدا از زبونت بشنفه هرچی خواست خداست میشه ببرشون خیرشون ببینی باز که دماغش سوخت و باز اشک روی اشک تو چشمانش جوش خورد همه چیز جلوش تاریک بود باز تو کلش دوید که دیگر محمد رو نخواهد دید اما از رفتن بزها خوشحال بود چون اگر محمد می آمد و او و بچه ها رو با خودش می برد بزها سرگردان میشدند و صاحب نداشتند اما آیا اصلا محمد میآمد آیا میشد که یک دفعه دیگر قد و بالای او را ببیند پسرک رفت قاطی بزها دانست که خیرالله میخواهد آنها را ببرد اغمایش رفت و همو تنش رو پایش تاب خورد دخترک هم رفت کنار مادرش ایستاد و با چشمان درشتش به بزها و خیرالله نگاه میکرد. و گوشه پیراهن مادرش را تو دستش مچاله می کرد و می و هیچ نمی گفت. بچه ها بزها را خیلی دوست می داشتند. پسرک با تعرض پرسید. «ننه، نه بزامون کجا می برن؟ مادرش به تندی گفت. کار نداشته باش. بواد فروختتشون. برو برای خودت بازی کن. پسرک باز گفت. من بزام را دوست دارم. نمی ببرنشون. شخروب آرامی گفت عوضش بوات میخواد دوتا گاوه نر و ماده بخری که برامون بچه بیارن پسرک تو لب رفت تونتون تون رو سر بوزی که بغل دستش بود دست میکشید و تکنانش تو دستش بود و مفش از لوله های بینیش بیرون زده بود و رو لبهاش فرا گرفته بود دخترک آرام و غمگین ایستاده بود بقل دست مادرش موی بچه ها بور بود و چشمانشان که پسرک هشت ساله بود، یک پیراهن کرباس کوتاه چرک مرده تا زیر نافتنش بود، شلوار پاش نبود و هر دم مفش را بالا میکشید. دست و صورتش چرک بود، پاهایش برهنه و کبره بسته بود دخترک چهار ساله بود با پیراهن چیت رنگ رو رفته و شلوار بلند از دبیت سیاه و چهره چرک با موهای خار شده و لپهای سفت و لب‌های درشد غلوی مثل لب‌های مادرش. خیرالله بریده را جلوی بز پیشاهنگ گرفت و گفت بیا بیا. دهن و بینی بز لرزید و به سوی بریده سر کشید و بریده ازش فرار کرد و سر و شانه بز به سوی بریده چرخید و پاهایش تو ماسه ها جا, به جا شد و دنبال بریده رفت و بزهای دیگر دنبال او به راه افتادند و زیر لکه خالی شد و شهرو و بچههایش و چند دانه مرغ و خروس هاج و واج آن زیر ماندند با تکه های پوست اندبانه خاکا و پارچه خالی آبخوری بزها و انبوهی پشکل دانه دانه و به هم چسبیده نزدیک ظهر بود که سه تفنگچی سوار برابر کومه محمد رسیدند و از اسب پیاده شدند شهرو بچه ها تو کپر بودند شهرو تو کپر سرگردان راه می رفت و بیان که بداند چه می کند اسباب خانه را بگذار و وردار می کرد بچه ها که از رفتن بزها غمین بودند رو گلیم نشسته بودند و خاموش به مادرشان نگاه می کردند. آنها هم یک بوی تازهی شنیده بودند که نمیدانستند چیست مادرشان حرف نمیزد مثل اینکه خانهشان خالی شده بود کهور و هم ریخته بود و پسرک که لحظه پیش جای توفنگ را روی دیوار خالی دیده بود و از مادرش پرسیده بود توفنگ باباش چطور شده و دل شهر رو تو ریخته بود و زبانش به تطپته افتاده بود و آخرش گفته بود که تفنگ خراب بوده و پدرش آن را برده بود بندر بندررک بدد درستش کنند و پسرک که خبر نداشته تفنگ خراب بوده زل زل. چهره مادرش نگاه کرده بود و حرف او را باور کرده بود و حالا چشمان درشت به زرک به مادرش و به دوروبر کپر دو دو میزد و میخواست بداند چه شده و هیچ نمی گفت. شهرو از صدای پای اسبها سراسیمه از کومه بیرون پرید و بچه هم فوری دنبالش دویدند سرش به بود و موهای افشان زاغی رنگ بر گلو و گردنش را گرفته بود دلش از دیدن توفنگچی ها ریختو فاری توفنگچی های حکومتی را شناخت یوغور و شتاب زده و گردالود بودند یکی از توفنگچی ها پیش از دیگران به کپر رسید و پیاده شد و از برقالود دهن کف کردهش را نزدیک در کومه کشید و نفستنان با لحجه غلیز آذربایجانی گفت ما دنبال محمد اومدیم تو زنش هستی؟ بعد بی پروا و شتاب زده تو کپر سرک کشید و آنجا تاریک بود و چشمش چیزی نمی‌دید. در تاریکی آنجا خیره ماند عرق از سر و گردنش و از زیر بغلش و پشتش عرق بیرون زده بود و پیراهنش سیاه شده بود شهر و هلخورده نگاه غریب احتراز آمیزی به تفنگچی که تو کومه سرک کشیده بود کرد و بعد چشمان درشت و سیاه سرمناکش را تو صورت دو تفنگچی دیگر که تازه از راه رسیده بودند دواند و با تعرض گفت خجالت نمیکشی سرزده تو خونی مردم سرک میکشی محمد کجا بود؟ رفته سر کار مگه چه شده؟ دلش تابتاب میزد و گلویش خشک شده بود و میدانست چه شده. توفنگچی ها به هم نگاه کردند توفنگچی ها گفت جانی گفت سرعجب کاری رفته که بندر را به خون کشید و شش نفر را زده و در رفته حالا اینم زنش که دو و نیمش باقیه دل شهرو تو قفسه سینش صدای سومه اسبی که رو تاخت میکرد درآورده بود بیخ گلو و زبانش نمناک شد دلش خندید زیر لب آیست گفت در رفته؟ پس محمد کار خودش را کرده و در رفته بود پس هر جوری باشد میاد دنبالش و با بچه‌ها میبردشان عشق تو چشمانش دوید. دلش میخواست تفنگچی را تو بغل بگیرد و صورتش را ماچ کند که او را از دل درآورده بود و خبر خوش براش آورده بود تفنگچی آذربایجانی رو اسبش برید و به یکی از تفنگچیا گفت تو بیا با من بریم خونی یکت خدا اگه ستاره آسمون باشه پای نش میاره و به تفنگچی دیگر گفت: «دوم اینجا باش تا من برگردم خوب حوااس جمع کن. و بعد تاخت کرد و با تفنگچی دیگر رفت. آن توفنگچی که مانده بود همانجا ایستاد و افسار اسبش تو دستش بود. کف سفیدی رو گردن اسب تو ذرات رمل موج میزد و کف زر رنگی از گوشه های دهنه آبخوریش بیرون زده بود. زمانی ایستاد و دور خودش رو نگاه کرد دلش خواست کاری بکند هیچ نون تو خونه نداریم هرچی بود بردم هشتم تو بلم حالا هرچی خمیر دارم نون میپزم بچه ها تو دست و پاش ول میزدند لاوک خمیری را که دیشب سر شب برای صبح آماده کرده بود برداشت و برگشت بیرون و رفت زیر لکه پسرش ساج تو دستش بود و دخترش یه تکه گونی شهر رو میخواست نان ساج بپزد. ساج را گذاشت رو اجاق. اجاق سه تکه سنگ دود زده بود که همیشه زیر لوکه دورور وور از خاکستر در افتاده بودند. پسرک رفت و خار و رو آورد. دخترک تود تپاله گاو و خاشاک و پیش خشکیده نخل آورد و اجاق روشن شد. شهر و چانه درست میکرد و بچه ها هم با تکای خمیر آدمک درست میکردند. حواسش تو کار نبود، چانه های درشت و ریز از زیر دستش بیرون می آمد. با گرمی هوا و نزدیکی به حالی آتشی که دورادور ساج زبانه میکشید باز می لرزید. شادی ناگهانی به دلش راه یافته بود، تنش را به لرز انداخته بود آن توپنگچی هم آمد تو سایه که بر نشست هنوز افسار اسب تو دستش بود از نانپختن آنها خوشش می آمد. شعله های زیر ساج گر گرفته بود و شعله سرخ ددالود آن دروفر ساج پخش شده بود. ساج گداخته شد و شهرو با کهنه روی آن مالید و دودی نمناک از آن بلند شد و سپس نان را انداخت رو ساج. توفنچی آنها را می پایید. به نظرش شهرو زن جوان و خوشگلی آمده بود. خودش زن نداشت و دلش میخواست زن بگیرد و بچه پیدا کند. هوای گرم بود و آفتاب آتشین ماسته ها را میتابید و هرم آن تو سایه پخش میشد. اسب تفنگچی پاهایش را از هم باز کرد و رو ماسه شاشید و ماسه سوراخ شد و با آتش شاش سبزگون اسب را به خود کشید تفنگچی دلش خواست حرف بزند خاموشی آزارش میداد. خسته بود و گرسنه بود و تشنه بود بعد مردد گفت زیره برای چی که همیشه نون اول خوب از کار در نمیاد و خراب میشه. راست میگفت. شهرولکی نان اول را که مچاله و نیمه سوخته بود از رو ساج برداشت و گذاشت رو گونیه بغل دستش و وقتی تو باش حرف میزد چشمان نیم خفته دودن درون دویدش به ساج بود و حلال ابروانش جسته بود و دود تو چهرهش پخش شده بود. برای اینه که اول کار هوای سردی و گرمی تا به دست آدم نیست، نون خوب از کار در نمیاد. من میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو و دل شهر و ریختو و منتظر خبر بدی شد. خیال میکنی که من برای گرفتن محمد اینجا اومدم؟ پس برای چه اومدی؟ و در دم حالش به جا آمد و با آرامی نانی روساج پهن کرد. و چون تابه خیلی داغ شده بود با تیرکی که تو دستش بود زیر نان فرو بردان را هوا داد و بخار سوزانی از میان نان و تابه بیرون جهست. هیچی من توپچی حکومتی ام. به من گفتن برو منم اومدم. اما این رو بدون که من رو برادر خودم حاضرم تفنگ بکشم. اما رو محمد حاضر نیستم دست بلند کنم. حالا محمد کجاست که تو تفنگ روش بکشی؟ هر جاست خدا پشت و پناهش باشه. هیچ که نمیدونه محمد کجاست اینا خیال میکردن محمد اومده دواس من تو دلم بهشون خندیدم اما بازم راه افتادم اومدم اینجا و مثل این آفتاب برام روشن بود که محمد تو دواس نیست خدا توفیقت بده نمیدونی مردم بندر چقدر خوشحالن میدونی اسمش باره چی گذاشتن؟ اسمش گذاشتن شیر محمد همه بهش میگن شیر محمد من نمیدونم محمد چکار کرد و از حرفایی تو هم سر در نمیارم اگه تو میدونی تعریف کن چهار نفر رو با توپنگ زده یه زنم با تبر کشته دسته یه زن دیگه هم با تبر قلم کرده که نمرده اما تقصیر خود زنا بود که میخواستن بگیرنش بعد هیچ که نمیدونه کجا رفته مثل اینکه مرغ شده پر گرفته رفته هوا از صبح تا حالا تموم بندر زیر و رو کردن پیداش نکردن اما نمیدونی مردم چقدر خوشحالن که شر این چندتا دقل از سرشون کم شده اما اگرم کسی پیداش کنه، ممکن نیست لوش بده. پس این تو ها چه میگن؟ من که چشمم از اینا آب نمیخوره. اینا جون بیخودی خودی میکنن. کاری ازشون ساخته نیست. یکیش کازرونیه، یکیشم هم ترکه، مال بالای تهرون. اما مثل اینا خیلی کم آدم پیدا میشه که بخواد محمد را لو بده. همه جا آدم خوب پیدا میشه، آدم بدم پیدا میشه. تو خودت چطور؟ اگر محمد را ببینیش؟ تفنگ روش میکشی؟ مگه نه حالا گفتم؟ نانم جومه سیاه برام بتنگ کنه اگه دست از پا خطا کنم. مگه من لغم محرومم؟ من خودم تنگسیرم. چطور میام به خاطر حکومت روی تنگسیر دیگه تفنگ بکشم؟ شهرو از همون اول که تفنگچی را دیده بود فهمیده بود تنگسیر است. چشمانش تو چهره تنگسیر باز ماند و زمانی به او خیره شد. نانی که رو تابه بود، بوش بلند شد و گل وسطش برشته شد. شهرو ولکینان رو از روساج بلند کرد و گفت زن؟ چرا زن؟ چرا باید محمد دستش رو زن بلند بشه؟ این دیگه دروغه توفنگچی تنگسی رو زمین توفن انداخت و گفت اگه خوب فکرش کنیم میبینی محمد تقصیر نداشته زنا میخواستن بگیرنش محمدم ناچار شده زدتشون دو دواک نون و پنیر پخش نمی‌کنن. کنن بچه ها خاموش بودند و لبهاشان از لغمه نان داغ قلنبه شده بود وقتی مادرشان حرف میزد به او نگاه میکردند حرف مادرشان که تمام میشد تو چهره تفنگچی خیره میماندند حالا هر دو برگشته بودند و به چهره تفنگچی زیر زل زل نگاه میکردند و لغمه تو دهانشان بود و آن را جویدند و حواسشان پیش تفنگچی بود دلشان میخواست باز حرف بزند تفنگچی خاموش بود و به اسبش نگاه میکرد و نوک افزارش را مثل شلاق به کف دست خود میزد. بعد ناگهان پا شد و گفت هی بون عرق شده یه خورده بگردونمش نکنه سینش ببنده سرما بخوره. و آنگاه اسب را جلوی کپر راه برد. میرفت و برمیگشت به طرف جایی که شهرو نان میپخت و تو روی بچه ها میخندید. توفنگ جوان بود؟ از محمد خیلی جوان در بود. از اولاتی پیچیده و قدی کوتاه و سینهی فراخت داشت. سبیل کلفت و تهریش زردی تو صورتش بود. چانه خمیر یکی یکی کم میشد و به جایشان نانهای پهن و نازکی رو تک گونی که رو زمین بود تلنبار بار می